الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين من سيدنا ورسولنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا وشهدنا ای که در بخش‌هایی که در بحث مطلق به استفاده ما اونها مبادی کتاب‌واریت مثال بگذارم میاد چون از کلی بخش اساسی باب مطلق همون حمله مطلق ور اون بحث اساسیش بقیه جنبه مبادی و مقدماتی داره حالا در اصول جدید ما در اصول ما یه مقدار بحث مقدمات حکمت رو با تو به ولی بودن و که در حقیقت همون مقدمات حکمت هم بیشتر جنبه موادی تصوری داره چون در با مقدمات حکمت ثابت میشه کجا مطلق هست اثبات مطلق بودن در حقیقت اونی که جنبه تحصیلی داره و بحث اساسی هم به مطلق برمقایید هم برست دیگری هم در بحث مطلب و مقید میاد مثل حیفت و مجاز مثل مسئله اینکه آیا خود برای پرزیادن متعاملن شدن متعاملن به نقیز مقید و که اصولی این بلیه است که در این مباحث و هایی که در بحث آنما خاص گفتن اکتفاق کنند. دیگه مواحث آنما خاص رو اینجا تکرار نکنن اونی که در اینجا فقط بحث اساسی وجود داره همون هم به مطلب و محیل ببیده احکام رجوع با در شباط مستاقی مخصده مثلا رجوع به خواهد مقید در شباط مستاقی محلومیه این بحث بحث های رو که در باب مطلب و محیل سوار میشه اکتفا کردن به هم مبارسی که در آموزش و تصریح هم دارن ادهی از اهل سنن پس این که اون چکر احکام مطلب و مقاییت غیر از همده مطلب و مقاییت هست همه در بحث آمو خاص گذاشته لذا بحث واقعی در حیثت در اینجا همونه همده مطلب و مقاییت این توضیح این که در کجای بحث هست یکی از مطالبی رو که مرگوم در اصرار بر اصولی مصدر اصولی متأخر چیه من قدمای اهل سنت بحث رو شد داشته باشم چه شو نه بحثی اینکه نسبت تقابل بین مطلق و مقید چیه ماردو نایینی و مشهور گفته تقابل عدم و ملک است یعنی مطلق جایی تصویر میشه که تغییر ممکن باشه اگر تغییر ممکن نباشه اصلاً هم معنا نداره در جایی اگر به خاطر نکتهی تقیید مستحیل باشه اطلاع ها و در مواقع قصد امر و قصد قربت و تعبودی و توسلی این بحث مفصل گذشت و نیوز هم اشاره اجمالی عرض کردیم ریش اون بحث در بر برمیده به قدیم یعنی از همون قدیم که در فرس شناسه شد میشه هزار سال بزاری سی سال حاصلش این بود که اگر ما شک بکنیم که یک واجبی تحبودیست یا است آیا اصل لفظی یا اصل عملی داریم یا نه مشهور بین اهل سنت از تو علمای ما اصل لفظی از الاطلاق و رو جاری کردم گفتان اصل لفظی جاری میشه میگیم دلیل مطلقه تبیید نفرده به دست قربرز یا قصد عمل پس بنابراین ما و یعنی با اطلاق اثبات توسلی بودن میکردن با اصافر اطلاق یک از لفتی خب بعدا هم که اصل عملی اضافه شد با اصل عملی هم غالقا همون اه... توسلیت رو اثبات کرده. چون اصالت البرای از این قید چون این قید زاریست تکلید که بست قربت یا قصد عمل اصالت نسبت و این قید جاری میکنن. در نتیجه هم اصل عملی و هم اصل عرضی اختضار می کرد توسلی بودن رو که این واجعه توسلی مثلا ورد سلام جواب سلام گفتن آیا جواب سلام گفتن واجعه ترکدیست یا توسلی؟ هر اصل امرو معروف نهی ازگون کرد آیا واجعه ترکدیست یا توسلی؟ آلا یکیسی امرو معروف میکنه برای خود نمایی وزنید و قصد برورده و قصد امتصال امروان آیا امتصال حاصل می اینا بحثه است که مطرح شده اینان گفتند که با شک که در این که تعبودی یا تراصلی و اصال اطلاع و اصال اطلاع براه هم اصل لبزی جاره میشه هم اصل عملی از چه در صابق این اصول یک مقداری نامنظم بودن از زمان شیخ در حوضه های ما قبلش هم بودن ما. شیخ انصافه از این نظامه بهتری به این اصول دارد و بعدها همین موابض مخصوصا به نظر ما فرسته و مرمو، آزی ها مرمون هایی خیلی شکل و انسجام و بهتری پیدا کرد اون ترتیب و اصول مثلا بناشون بینه که اصول لفظی همیشه مقدمان بر اصول عملی چون اصول لفظی رو جزه امارات میدونن امارات بر اصول عملی مقدم لذات طبیعتن اولا اصل لفظی جاری اگر شد اصل لفظی در ما نحنوطی اصالتال اگر اصل لفظی جاری شد شد نشد اون مخنوط در اصل عملی می که اصالتال برای اصلا همونجه توضیحاتشو ارز در بحث تربودی و فرسولی در مثل کتاب کفایی نه اصل لفظی رو جاری می ایشون و اصل عملی رو احتیاط میدونه دونه برای ازا طبق این قائده یا اصل نشود، جاری نشوند و برگرشت در اصل عملی در اصل عملی همکسی غالبه شد میشه اصل اولی تعبودی بودن نه ترسلی بودن اکس میشه نتیجه اصل این روشن شده سابقه بس به این مناسبت که آیا اصالت اصلاح در نصف اصل قربت جاری میشیند مرقوم لاعیه اصول المطلب به صورت یک قانونمند در وارددی از موردی خارج کرده. چون هر دو مرقوم لاعیه دو تا مطلب بود، یک صغرا و یک کبرى. کبرى این بود که تقابل بین اسرا و تعیض، تقابل بین عدم و ملکات و خب طبیعتا به استر معلکه در اینطور میشه که عدم به حساب معقول باشه. عدم که ملکه معقول باشی اگر ملکه تلوز نباشه حدش تعمیق است مثال معروف بینایی و کوری کسی بینا باشه یا کور باشه این در مورد قابل در مورد انسان و حیوان که چه دارن اما مثل دیوار دیگه درش نوشته میشه بله در مورد قابل نسبتشون سلب و ایجابه اما نسبت به کل نسبتشون نسبت عدم و ملک است وقتی یک بحث اطلاح و حالا ایشون تقبیره به تقبیر کردن به شبه به منزله یه عدم ملکه حالا برها یا تقابل عدم و ملکه یا شبه در توضیح شبه شبه شبه عدم و ایشان مرحومه نایی میگارن که تقابل اطلاح و تقیید است یعنی در اطلاح در جایی ما بهشتماست رکه میکنیم که تغییر ممکن باشه. اگر تقیید ممکن نباشه دیگه اطلاق هست ممکن نخواهد اگر تقیید مستحیف شد من مثالهای اروفی دیگه هم زدم مثلا اگر یه آب از کاره مریخ بیار خب این آنها رسیدن خودش به کاره مریخان چند سای توی میگه چند ماه توی براز اگر آب بیار بخواد براز چند ماه با داشته و براز, براز بخواد موشکی هم داشته, هم داشته, هم داشته, هم داشته هم شده. براز اگر بخواد بگه آب بیار تقییلش بزنه با آب کاری مریخ خودش این تقییل دوست اگه آب بیار مطلق آب میگن این آب مطلق هم شامل آب کاری مریخ نمیشه چون تقییل با کاری مریخ خیلی رست نبود مطلقش هم شامل اون نمیشه همون دیگه اطلاق دیگه به این لحاظ نداره اگر تقییل این دوتا نسبتشون این جوریه تقییل باید ممکن باشه تا اطلاع باشته اطلاع خواهدیم بله اطلاع خواهده امکانه روشن شده, شده. این کبرا و اما جناب صبرا از کردن دیروز اذکر کردن مرمون هایی به ساس قانون من محتقد از تقیید موضوع به انقسامات اولیه اشکال ندارد اما به انقسامات سانویه نمی‌شود. مرادیشان از انقسامات اولیه مجرد اصطلاح خیلی بحث و سنگین نیست انقساماتی که برای یک شی وارد میشه بدون در نظر گرفتن حق مثلا من با مثال یه زید رو بدون در نظر گرفتن حق یا مثلا اکرام زید اکرام زید بدون در نظر گرفتن حق اون که روز جمعه باشه که روز شمبه باشه ممکنه راش شب باشه ممکن روز باشه این اکرام قیودهایی به خودش میگیره این قبل از بوک. حکم که بیاد میتونه به یکی از این قیودها تغییر بده میگه شب رو اکرام بکن روز جمعه اکرام روز فرسانده و اگر این قید نیاد ما اون مقداری که قید ممکن بود اصلاح ساخت میشه روشن باشه مثلا اگر روز جمعه اکرام بکن بعد کو اکرام بکن اون قید نره میگه اصلاح اکرام میتونه بود جمعه روز پنشن به خواب بیدار شرد روز، به اون مقداری که انقسامات به تحبیر ایشان اولیه هست اولیه مراد شد دسته الله بود ما این انقسامات رو میتونیم برای اکرام در نظر بکنیم این انقسامات رو برای عالم میتونیم در نظر بگیم بگیم عالمی که با ترواست عالمی که فاسده عالمی که برسیم این که مثلا 30 ساله از آلمی که 40 ساله هست آلمی که 20 ساله هست همه این همیشون آلمی که بالره آلمی که بالر نیست ما این انقسامات رو میتونیم انجام دهیم. نسبت به این انقسامات اگر بودیم تریهی نخلی اطلاق ثابت چون این انقسامات قبل از حکمی قبل از اینکه که حکمی بکنه آدم به این انقسامات تخصیل میشه اکرام به یه انتصامات میشه اما یه انتصاماتی پیدا میکنه شیعی بعد از حکم مثلا بگه مثلا شما آدم رو اکرام بکن به خیلی این که علم به حکمی این وجوب اکرام داشتیم علم به وجوب اکرام علم به وجوب باز در قبل از حکم تصور میشه تا حکمش تعلق سر قبل از وجود و حکم یه ازر به وجود بگیم هنوز که وجود نیامده یا قصد مثلا عالم رو اکسام بکن با این قیل که قصد همین امتصال عمر رو بکنیم پس همجور امتصال میده که شما بعد از تعلق حکم در نظر بگیریم به اصطلاح مرموم ناینی این قسامات سانویه که شما باشیم این که جامعه یه معیار بشه که بعد از تعلق حکم میاد میگه نمیشه اینها در روز قبل از حکم احری بشه مثلا قصد قربت قصد انتصال قصد انتصال یعنی قصد انتصال امر روز امر نمایاد شده چی رخ میده میگه جواب سلامی که با قصد انتصال امر همین امری که خودش میکنه با قصد انتصال امر باشه باشه, باشه باشه جواب سلام با نو که امر این انقسامات باز قبل از عرب تصور و قبل از عرب نیستن چون عمری نیستن انقسامات بعد از عرب این خلاصه اشکال مرمون نایمی که این اشکال رو نمیستن و لذایشون به نظر مبارکشون هرچی که از انقسامات سانویه باشه مثل قصد عرب، مثل عرب، مثل و تمام این انقسامات تقیید اونها امکان ندارد در رسوی خود خود چون امکان نداره لفظ به لحاظونها اطلاق نداره این بکت به لحاظونها اطلاق میدنه چون تقییبش ممکن نیست. این خلاصه اشکال مرموم نایمی قدسال لحاثه ارض کنم که نسمت بگید سغرا و کبرا ارسن در هر دوش منابشه شده اما در سغرا بخص علمش کنار باشه چون علم طریبیت صرف در این مشکل دیگه داره باشه کنار در قصد تردن اشکال های خوبی هم فرمدن حقم بایشون هم بای خوبی احساب چون اشکال دارن بگه آجان شما جواب سلامی که مقید باشه به قصد خود امر این جواب وجود به همین به قصدش این به قصد این امر شما اون جواب سلام در شما بود حالا این قصد امر تا امر نباشه محقق نمونی خب بعدش محقق بود زنگام اعتبار چیزی نخواهد تو عدله اعتبار که ما باید موضوع رو تام و تمام و شسته و رفته قبل از جل داشته باشیم تا جل داشته الله بگیر میشه تصاوار کشه مشکل داره. قیود دیگه مثلا میگه زیدو در روز جمعه ساعت پنج به قصد خود امر وجود که الان من عمره میکنم به قصد خود این عمرش رو برچام داره چه مشکل خاصی؟ چه استحالهی لازم نه تقدامه ها و مترفه این هر حق چیزی نیست اینجا اعتبارات نیست مشکل نداره یک چیز قیل ازورده این قیل تحقاقش بعد از خود همه این هیچ مشکل خاصی تولید نمیکنه <تصفح> این چه سالشون تنفید میشه در مقام هم تفیید بزنه چرا؟ با قول آن افق نفس خیلی سهش بیشد چیز نیست برای ارسان که تصویر بکنه مثلا رد سلامه که مقید باشه به خود رسته همین هم بله این قیل بعد از امر محقق میشه خود چه چی نکته خندی داره مهم اینه که این عمریس که دارای ملاد خودشه گاه این وقت اینه که فقط رد سلام بشه گاه این وقت اینه که رد سلام با قصد قربت بشه با قصد بحث سر ملاق ها, ها مختلفن پس به لحاظ ملاق هیچ مشکل نداره به لحاظ تصور در دائره اوفم و نحس هم هیچ مشکل نداره میونه مرحله ایمتصالی ایمتصال ها که بعد از امره اون ها که مشکل نداره چه مشکل خاصی پیش میاد هیچ مشکل خاصی رو تخور نمیشه این راجب سقران راجب کوبرا بحث علم شده طریقیت صرف اشکالش اینه که اونی که طریق صرف تأثیر نمیتونه بگذاره یعنی اون نمیتونه علم به حب چیزی و عوض بکنه مگر اینکه علم موضوعی باشه علم موضوعی باشه برده اگر علم طریقی صرف باشه که شن علم تأثیرش مشکل دیگه داره نمیتونه مشکلی که ایشون تسا این راجب محترش. اما بخش دربو که کبرا باشه مرحوم استاد چرارن این مناقشه دی کردن آسان تو بحث مطلب هست مناسب بود از انجین مقدمه قرار بدن دا که ایشان این رو در مناسبت مقدمات حکمت متعرض شدن مرحوم اینا اینی اینو یکی ای از مواقعیسی که قبل از دخول در بخش مطلب که آیا تقابل بینه اطلاقا تقیید چیه اما مرموم استاد ارس کرده دیروز به مناسبت مقدمه حقولا از مقدمات حکمت متعرضه شده دیروز نظر عبارتیشون رو خوندیم من داره ارموزم بقیه شکنه بیشون خلاصه حرفش اول عرض بکنم بیشون خلاصه حرف استاد این است که تقابل به یه بلا و خدید گاه اوقات به لحاظ مقام سبوت و واقع گاه یه اوقات به لحاظ مقام اثباته اگر به لحاظ مقام ثبوت باشه چون اهمال در واقعی یاد محبول نیست یا حکم مقیده یا مطلقه دیگه غیرزی تا راهی نداره و لذات آخرشون آخرشان هکیچه گرفتن که نسبتشون تقابلشون تقابل سزاد مطلبی که ایشون تصور کنند به تقابل سر ایجاد بیشتر میکنه تا سزاد هیچون فرمان بیانو دالای تفیید سل 64 از شرح مقدمه اول از مقدمات هجمه از که میخوش که میشه. برس میشن اطلاق اول حقی تارتن یوله اینجا همشی یوله هز شاک شده بینده یوله هز بزرش به اضافت الى الواقع و مقام سبوت و اخرا بلی اضافه ال مقام اثبات و زلاله و اما اول در مقام سبوت در در مقام سود، بله فرق ذکر غیر مرهز است. نه چطور لواست بین همه فل واقعه و نفس الان، و که آن متكلم متلفتی علی القا و معلم من الخصوصیات حکیمان کنه او غیر چطور یادم من اینی افتاد فی متعلق و موضوعی این مثال اکرم دیگرم در نظر بگیریم مفاده از حکم اکرم مفادش. مفاده مفاده از حکم که ماده این این اسمش متعلق زید اسمش موضوع این اصطلاح اینجوریه البته این اصلاح جوریه به کار برده شده چند بار از سن. پس در اکرم زیده یک وقت داریم یک متعلق داریم یک موضوع داریم گاری به خود متعلق میگن موضوع مثلا به خود اکرام میگن موضوع گاری هم به, متع... به موضوع میگن متعلق و متعلق هر سه چیزه مفاد که توضیح شما نهاز کردن چون در لغت عربی حیات دارای معانی هستن این در لغت نیست در لغت عربی مثلا در لغت فارسی غالبا معانی مختلف رو با پسوند و پیشوند افاده میکنه انگلیسی هم همینطلقات هندو اروپایی اصولا اما در لغت عربی معانی مختلف رو با حیعات فاعل و مفعول و غربه و یا غربه و و رو عوض میکنه با تغییر هیئت معنای جدیدی افاده میکنه. افاده میکنه افاده معانی ولذا برای فهم معانی حیعات ما همونطور که به من برای مواد برمیگریم به تبادل و سهل سلوین ها برای حیات هم همون کار باید بکنیم. پس هیئت اکره معنا داره رد شده ره شده برای وجود افاده وجود خود اکرام هم که ما درست که مسلم معنا داره زین هم که حیعت و ما با هم دیگه معنا داره صفحه چیز داریم که ایشون میفرمه؟ قیاسه نیشید قیاس هم. با همون قیاس اصفات رو کنید اصولاً تب... لغت سماعیه یعخو دفی متعلق حکمی و موضوعی خصوصیت اولا یعخو دفیه لا یع من هم ولی سالسه لهم یک ثبوت می نداری یا خصوصیت گرفته یا یع لا یعخو شی شیعن اول اول یکون مغایر و عل ثانی یکون مطلقا و لذا مسلغه مغاییت و مقام ثبوت واقع و بله چون ایشون ایش بحث دیگه داره بله تا آخرش هم میگه چند باری مطلبی که ما خوندیم در عبارت منوسات بار اول بداءه تانلی اهمال فی الواقع مستحیل و چون اهمال در واقعیت فرض الحکم و یه ما مطلق و مقید و لا سالس ده ما حالا مطلق مقید وجودی گرفته زاهن مقید وجودی مطلق از دید نه و ایجاد و منات نتیجه نه اگر درک و عالم ثبوت و واقع به تعبیریشون به سلب و ایجادی اشاره می‌کنه چون مقید وجودیه مستر عدمونه میشه سلبی و ایجادیونه بله نه نه ادم یعنی مثلا قیل ادم قیل نه عدم اون قیل و ادم قیل چرا؟ چرا اینجا مراد اینه دیگه اگه ثبوت که افتیم که اینه خب پس ایشان اول هم فرمودن که در مطرقه مقید ثبوتی نسبتشون ایشون مراد هزاده نسبت نسبت, نسبت هزاده این فرض اول یه فرض دوم و علت ثانی در زیر عبارت ما اداکان اطلاق و تغییر مرغوزین به اصل مقام اثبات فهینه من انتمکن المتکلم من بیان و کانفی مقام کان فی مقام این اما ازالک لمیته بقیدیم کان اطلاق رو فی ها در مقام کاشتن ان الاطلاق در مقام سبوت و ان مراده رو فی ها در مقام مطلقا این مراد, این مراد مراد مرموع استاد کلمه اگه اضافه می کلمه ان مراد رو جدی فیهاد المقام بعد مطلقون یعنی به عبار از این اخرام معلوم میشه که مراد جدی مطابق است با مراد استعمالی اگه به این نور رو مراد آلمم مراد مطلق آلمم چونی که مراد استعمالی و این نحن مراده فیهاد المقام مراده ای مراده جدی چون محفوظ در مقام جلالت مراد استعمالی که مطلق بود قید نهی بود مراد جلدیش هم مطلقه و هم ما ادارت نیستمک کن من الاسیان به قیدن فی مقام الاسوا فلا یک و اصلاح و کلامی فی حال المقام ان اصلاح فیدا شد مقام و الهکم ان مراده و مراد جلدی فی الواقع وغائر اخلاق اینجاست که تعبیر مراد جدی کرده اینجدیه که بالا هم که مراد جدیش اخلاقه ظاهر عبارات مرحوم استاد این است که نسبت توازن بین مطلق و بغایت به لحاظ ثبوت را واقع توازن سلبی جا و به لحاظ مقام اصفاد عدم و ملکی این کل کلامیشان در اسنای مطلب دیگه هم فرمودن غلو تنزل نو انزاله و تلل نو ان التوابل بینهما من توابل و الملکه الا نحو لا یعتبر کامل موضوع لها همراه شخصی است هم در عدم الملکه لازم نیست امر شخصی باشد برای قضیه فن موضوع فیها نوعی است موضوع نوعی و لا یعتراضی مسی یعنی فنو کل فرد من احوال این افرادی موضوع قابل للعتصاد بلی از دهید رو داره که به اضافه ایلا بعض افراده گای اصلا نسبت، مثلا نسبت بین علم و جهر تعامل از الملکه چون انسان است که آلم را جاهل باشی دیوار نگم باشه آلم را جاهل مثلا الحال به علم و جهر به اضافه ایلا ذاتی این سبحان و تعالی اما همین علم اون عدم و ملکه در اون عنوان علمه اون به استرا خودشون نوگیشه. و اما در یک فرد علم و جمع ممکن است علم ممکن نباشه جمع هم مستقیل بشه. فعلل علم به به کن ذادی تا حالا مستحیل، و اگر علم مستیح شد دمین الوااضر لا ان ن علم را تسل زم حالا که علم, علم مستی شد جمع و مستقیل باشه. نه حالا که علم مستیل شد، جزم ضروری میشه. در تسریذ مزرعته رغم عن تقابل بینهما یعنی علم وجد من تقابل عدمه. <تصفح> پس ممکن است در خود اون عنوان نوعی شوابونشون عدم ملکه باشه اما نسبت در افراد تعبیرشان <تصفح> صلب ایجاب یا تقابل تضاد باشه. و هر در حالیه پنل ممکن و فرری به اضافه تعالی الله فه این نه در حالت جنا، چون غنایی که ممکن که مستحیل است لازم است استحالت فقره مسترزم استحالت فقر نیست بلکه تستلزم ضرورت ضرورت او و او واجبه فقر او اصلا من با لغات دقیقاً چیزی اینجارم بحثیشو نبودیم دقیقا استفاد به معنای کلامی ایشان نداریم حالا اینجا چه فرمیده اصلا که توضیح کل این کلامی ایشان یادا این شما خدا نمو هم از ما بگذاره که این بحث را به بحثات یاد برای این وضعیم اصلا که اما اینکه ایشون فضلنه مقام صعود داریم به مقام اثبات داریم. برای ما هنوز قابل فهم نیست حصولا مراد ما از مطلق و مقرید هم مقام است. در در خصوص مثلا صحبت در خصوص صحبت اطلاقات حمید صوتی مطرحه کسی کار اطلاق, اطلاق. اینه که ایشون اشاره را می‌کنند انل احوال فواقع مستقیلا خب اهمال در واقع مستقیل بحث در اعتبارات قانونی است پس بحث ما در خصوص در اعتبارات قانونی در اعتبارات قانونی اهمال واقع این که مثل به صطعه اساسی اصلا وقتی قانون اساسی رو جعل میکنه بشر هدف اساسیش اهمانه نمیاد خصوصیات رو بگه. خصوصیاتش اون قانون دیگه شرح میده. اصلاً ناظر نیست. بلزا در نص مواد قانون اساسی نه فقط خصوصیات نمونده، به اطلاقش هم تامل چون مقام نیست اصلا. با ولی عنوان کلی، فرض که مثلا در قانون اساسی آمده که باید استقلال اقتصادی باشه، به این اما این معنای استقلال اتزایی است که ما بفلان کشتره که همسای صحابه سه مثلا تجارت نداشتیم این معناش ای نمی کنه اهمال در واقعیات یاد ما اصلا در قوانین اساسی دنبال واقعیات نیستیم اصلا در احتوارت قانونی بعد سر اون مقداریست که اعتبار شده و من کلارت این توضیح هست کردن چند درم کرده، کردم مرحوم های علامه سواسوایی در این اصول فلسفه شو نومه مقاله شنده من نهم هست ادراکات اعتباری کسی از یا یا شیشونھیست؟ شیشون, شیشون؟ هست مندار مقاله شیشون میشه؟ ادراکات اعتباری تا Agroch هست بحث خوبیه نیست این بحث و حسول اما این بحث هم تو فلسفه تنمیلشه کار خوبیه اصول فلسفه کارش سر ادراکات اعتباری نیست سر اومت ЭФba و, و باق اعترافات اعتباری امور اعتباری خودش یک دنیای خاصه خودش داره از این جهت در فلسفه و که دنیا خواست خودش روش بدن مقاله داره چیه تاصره نمت تاصر سامن اشاراتی که مربوط به ارفان خب بحث عرفان با فلسفه مراحبت آرفی فرق اما در اونجا هم بیاد برای این جرد شرد داره بشه کار خوبی عرض اینه که یکی از نکات از در اون مقاله ادراکات اتبار اعتباری اتبار خونده باشه یه مقدار باش باشید مطالب اضافه باشید یکی از نکاتی رو که ما دائما عرض میکنیم، یکی از قطاعز امور اضعباری دقت کنیم مقام اصفادش اتبار عین مقام سبوتی نه اینکه یکی اوسع باشه که از باشه در امور حقیقی اینطور نیست حالا فراسیم مثلا شما اگه گفتید منبار مثال اگر شما تبداری نفرسون سریع حرکت میکنه ظاهرش تب تبدارشن علت از برای سرعت نفر ظاهرش اونطوره اما ممکن است در واقع برد سرعت نفرس علت تبد بشه چرا؟ چون در اموری که هم به خبری داره شما تابع واقعی نه تابع ابرازی که میکنی. اون واقع با خودش محفوظه کار شما حکایت واقعه اصلا کار شما اعتبار نیست اما تو امور اعتباری که در امور اعتباری چون محسوسش نه که واقع نداره واقعش هم نمیشه اوسع از ابراز باشه همون مقدار که ابراز میشه واقعا همون مقداره این نه به نظر من هم ببینید در امور اعتباری همیشه واقع به اندازه ابرازه نه اوسع از و نه ازیاد همون مقداری که ابراز میشه اگر گفت مثلا این دارو رو خریدن به همین مقدار ابراز شده حالا دارو رو خریده در قلب خودش این بوده که بره خونه به بچهش بده مریض رفت کنید به بچهش خوبی شده بیاد برگرده بره بره دارو من دارور میکرم شده. نه تنفاستم بچه هم بده حالا بچه خوب نیم خواهد بیاد برگرده تو مقام اعتبارات اینجوریه همین که گفت دارو خریدم به همین مقدار ما کار اون قلب خودتون میگه شو خونه و مرز و این گرفتاری ها به چه مقدار ابراز میکنه این یک نقطه اساسی در حالت بین اخبار و اعتبارات به اصطلاح قانونی اون مقدار که شما ابراز میکنی، واقعا همون مقداره یعنی سن از خصائص امور اعتباری مثلا این گفت اگر روز جمعه شد نان بخار ظاهرش اینه که روز جمعه شدن علت نان این این هم شندیه واقع نمه حالا شما در واقع این بوده که ایشون بهش گفتن روز جمعه مهمان میخواد در جد این نظرش این بوده به خاطر مهمان اما چون اقراض کرده اگر روز جمعه بود نان بخارد روز جمعه شد و فسرشون چهان نان نخیده؟ میگه خب مثلا مهمان نمونه گفت چه چاله مهمان آوازه؟ من گفتم اگر روز جمعه شد نان بخرد؟ مگر ابراز بکنه؟ دقیقه اگر مهمان آمد در روز جمعه نان بخرد؟ اگر خوب دقیقه یکی از خصائص امور اعتباری تو ذهن من هست که مرمومه الگامه این نقطه رو در ادرافات اعتباری توضیح ندادم این یک ای مطلب بسیار اساسی و آثار فراوان و اصولی و قانونی برش بار میشه. در اعتبارات قانونی شما واقع را از مقام اثبات جدا نکنید مثلا اثباتش و ثبوتش یکیه اون چه که مرمون استاد رو ما در اعتبارات قانونی از قبیل فیزیک و شیمی نیست یک واقع داره پس یک دانشمندی میگه پس کره زمین دو رو خورشی میگرده یکی بگه خورشی دو رو زمین مثلا ممکنه هر دو باسم باشه بالاخره یک واقعی به جای خودش محدوده اون واقع با خبره ما جا به جا نمیشه اصلا تکار نمیکنه اون واقع به جای خودش محدوده اما اگر گفت اگر روز جمعه شو رو نان بخر تا مجملی این مطلب شد روز جمعه دخول روز جمعه علت میشه برای نان در واقع ممکن است اللدن نباشه پس این نکته را همیشه در نظر داشته باشیم که در امور اعتباری مقدار اثبات شما تابع صبوت نیست بلکه صبوت امر اعتباری تابع مقدار اثبات اگر بنا شد اصلاح و اینشون یک بدایت احمال فلواقع مستقیبا این در امور واقعی در امر اعتباری اینطور نیست گاهی در عمره اعتباری اصلا هدف اصاسی احماله او هلت لکن و هیمت الانعام اندا مایوت لاعله کن اصلا هدف اصاسی همینه چرا اصلا هدف اساسی جعب قابله بلکه الان ارز کردم چیزهای اصلا نام مثلا سند ششمنداز سند ششمنداز باز از قانون اساسی اهمالش بیشتره به بی هیچ خصوصیات نگاه نمی کنه باز چیزی از اسمش مثلا فرض کنید شعارهای سیاسی منبال میسن باید شعارهای سیاسی اصلا قابل تمثل به اطلاعش نیست باید استقلال آزادی جمهوری اسلامی این کشورهای برسی و دوباره اشتراکی اتحاد مرده اتحاد کشوره عربی به اصلا خودش هرگی هم که آزادی اشتراک هم شد شد نیست زفت اینا اصلا قابل تمثل به اطلاقشون نیست هدفشون احماله مثلا هدف و اساسی احماله بلکه بیشتر میشه. این که بذاحت ان احمال در واقع و در امور اعتباری این نیست این واقع اصلا اطلاقی رو که شما بررسی میکنید اطلاق اثباتیه نه اطلاق صمودی اصلا اطلاق صمودی محل نظر نیست کلن اینی مطلبی که ایشون فرمودن اینی که ایشون فرمودن که در نوع باشه و در فرد نباشه اون نشود علم و جهل رو که و شعاع و ملکی میذارن به لحاظ انسان لغز مثلا حیوان حیبان علم پیدا نکن بله انسان و دیوار دیوار علم پیدا نکن جمعا پیدا نکن و اما به های این که متعلق علمشی این تقسیم نیست اصلا در مورد قابل از کرده نسبت به این دوتا تلب و ایجابه اما و بسر به مطلق موارد نسبتشون تقاقل اما و بسر لیکن نسبت به خود انسان یا اعماس یا بسر بین وجود و عدم اینه که ایشون فهمدن چون علم به خدا بر مستحیله پس جرم و بعد جرم مستحیله فهم میکنه به این معنا مستحیله خوب دقیق بکنیم جرم گاهی دا، به معنای عدم علم نه اون اصلا در مورد قابله گاهی جهل به معنای عدم ملکه است اصطلاحشون در عدر ملکه این که جای عدر و است همش با سرگویی جا بینه در اون عدم استعداد هست، فعلیت نیست. و لذا اگر که اون استعداد عمل به فعلیت، مثلا کور آدم کور استعداد بینایی درش هست. رضا اگر مثلا درمانی بکنه بینا میشه یا قولونه حرکت جوارمش بکنه بینا میشه. یک نوع با یک نوع حرکتی این بینایی براش پیدا میشه. نسبت به خداوند متعال همینطوره اگر اونی علم و که عدم ملکت که نسبت به انسانه در نظر بگیریم همینطوره همچنان که علم استحاله داره جهل از استحاله داره فهم چون این جهل قابل حرکت و از استعداد به فعلیت رسیدن نیست یعنی تعبیر کرده و که نوکان زن اومد جهولا اشاره بگیمه چون از ظلم به ادارت میرسه و از اون حرکت استعداد، اون استعدادش هست که با اون حرکتی که داره میتونه به فعلیت به ملکه بره. پس این دو تا مثلا اون ثقل و غنا هم که اون سرعتی بعدلیه ان به شایدشون توازنارو که هم پولداری میگه پولداره ثقل و قم که انتخابی استقلال در وجود در استقلال باشه که اثر ادو ملکه نیست الان که جماقا حق در مقام در اینجا انصافا با مفهوم نهایی قدس الله و مشهور بین عالم است تقابل و اصولاً چون تقابل بین عالم و ملکه رو یک نوع به اصطلاح بین امور واقعی است اینجا باید بگیم منزله تقابل نه ما بگیم تقابل چون, تقاب... چون اینجا اعتبار سرس سر رفت چون بحث نداره شبیه او یعنی هدف ما این است که اگر در نسبت به خیلی تبیید ممکن نبود ما اطلاق لفظی هم نسبت به اون قید نداریم یا اگر نسبت به یه قیدی تو مقام تقییدش درست نرو تو مقام اطلاقش هم مییم. مثلا اون نزاع معروف اخباری ها و اصولی ها در وجیه ظواهر کتاب رو ما این جور معنا کردیم از اخباری ها که نگفتن بیشتر با و اون که بیایی اصولاً بجای اون حرفا از در کتاب بوجه نه این کنارا بحث مثل طرح بحث رو اینجوری بکنید تو اصولاً امومات کتابی و اطلاقات کتابی به منزله قانون اساسی هستن نازره به اصل تشریع هستن اصلا نازره به مقام تغییر نیستن اصلا نظر نداره یعنی بنای این شریعت مقدسه بین شد که کتاب به منزله قانون اساسی باشه. به اصطلاح قانون اساسی از حدود 24 سال بعد از جمهوری اول فرانسه و انقلاب کبیر فرانسه تعبیر قانون اساسی را افتادند. خیلی از فکری از قرن 18 تا استفاضه حردستان این نیست ساله که تمام کشور رو کنه ببین قانون اساسی باشه باشه. ادعای ایشون از 24 ای سال. اما در حقیقت اون چیزی که در اسلام اومده قبل از این انقلاب فرانسه به 1400 سال همون نقش قانون اساسی و قران داره در واقعه بعضی از این کشورهای اسلامی هم حرفشون همینه که ما قانون اساسی نداریم چون قرآن داریم قرآن به منزله دستوره دستور اسلام عربی بناسوزه الان عربا به جای اون اساسی میان در قانون اساسی لكن بیشتر کلمه دستور رو بکنه. به کار به مثل شبیه مشروطه مثلا که ما انقلاب مشروطه رو میگن اله حرکت و به دستور معنی اصلا خود قرآن مثل قرآن اصلا و درکیج و دستانو قرآن اصلا قرآن اصلا نیم که محسوسا بتونه به همون جدی که قرآن به نحوی قانون اساسی وارد ورد شده و بیان شده که به تمام مسلمان ها رو با اختلاف فرقه و نهنه شامل بشه این هم خودشی گمانه بزرگی پس بنابراین اما قوانین مدنی و خاص اون در سنت آمد پس ما دو, دو حال اضافه بکنیم در یک حال تقیید اصلا در مد نظر نبوده ولذا اطلاق هم مد نظر نیست دقیق کردیم در یک مجال تقیید مد نظر بوده ولذا اطلاق هم مد نظر ننیست حالا ما با این بحثی که کردیم اون بحث نایمی و قصد قربت به صورت سانیه کنید شکل بهتری پیدا کرد مثلا معرب و ناینی اشکال میکنه وارد اخباریه چون میگه افق العہد عموم نداره اما علم اومنده شوتر عموم داره چه فرقی میکنه اینا عام و عامه افق العہد صحیح امن جواب این آیه میتونن آیه ناینی آیه خوی دیگه‌ام روشن شود افق العہد در آیه قران در آیه قرآن بنا ندون مت تعبیر بیاد بنا ندون تخصیص بیاد خوب دقت بکنید در کریم بنا به نیست بناب در اصل جعله مثل الان در برزیزه هست که مثلا این مثلا استقلال اقتصادی باید رو شد. تفصیل آن مواد قانونیش بعد در مواد قانون مدنی باید خواهد شد اینجا ببینید اوفو بالعود اصل اولین که افراد با هم دیگه این قراردادها ها با جول بخواسته این اوود پس اوهو بالعقود اصولا تو مقام تقلید نیست چون تو مقام تقلید نیست اطلاق نداره به طور شما به این اما الامام رند شروطه مرسل الله فرموده رسول الله کلامش تو مقام تقلیده لذا اگر قید نظر اصلاح داره الامام رند شروطه اطلاق داره شامل میشه دقت نقطه ضعفش شده پس مراد فرس این آیی مبارکه خفص رو وجوه و ایدی اکم اهل سنت ادهیشون تمسک کردن گفتن اطلاق های مورد شامی میشه مثلا اول صورت بشه دست بشه فهمه میکن تقریب و تقریب صورت در خب اطلاق جواب این آیه تقیید نمیزن اصلا تو مقام تغییر نیست این آیه چون تو مقام تغییر نیست خواهده خواهده مقام اطلاق هم میدید نه این که بگیم تقیید مستهیل در اطلاق مستهیل اون یک بحث. نه این که بگیم تقیید ممکن نیست اصلا تو مقام تقیید نیست اون دقیق بکنیم یعنی تو مقام تشریح بران خصوصیات نیست چرا؟ چون این شریعت اینجوری آمد که اصل تشریح در قرآن باشه تفرید شده خصوصیات در رسول الله رسول الله در مقام خود دائما اول سوره شوستن بعد از تراس بعد از چشت هیچ وقت از نکرده. اون کار رسول الله و کلمات رسول الله اونا میشه به اقتداش نمیشه چون تو مقام تقیید خودی دیگه به جای بحث معلوم نایینی که درسته حال از تقیید است حال از این تعبیری به کار نداری هر جا که اسمولم درسته نمی خواهد بگن هر جا که بیه نهوی از انها تقیید نباشه یا تو مقام تغییر نباشه یا تقیید ممکن نباشه خواهی نخواهی اطلاق هم دارم جانید و ما از کردیم مراد اهل بیت هم انما یعرف القرآن من خوش ببه مراد این که شما نیاییم کتاب رو به تنهایی بگیریم فخص رو بود جای کن و ایده خود المرافق این نمیشه اگر ب توضیح بدید باید کتاب و سنت با هم باشه پس بنابراین انصافا حق با مرحوم نایمیست و مشهور علا اطلاق و جایی در نظر میگیریم که تقیید بشه اما اگر تقیید نباشه که الان توضیحات ما روشن شد حالا یا به تقیید نایمی باشه یا مقام مقام تقیید نباشه اصلا هم در اونجاها معنا نخواهد داشت. نسال الله و اطلاق محن که شما فرمونه بودیم